بسم الله الرحمن الرحیم گروه سرود فاروق اعظم از مدرسه دارالقران سراوان تقدیم میدارد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل رایتکم من تاكم عذاب الله ذاب الله او الله العظيم بسم الله الرحمن الرحیم دنیای امروز ما پر شده است از ظلم و, و خونخاری دنیا مملو از جنایت جانیان بی وجدان. گوش فلک سنیت نزاع های اطفال بی پناه به درد آمده است مسلمان بجرم مسلمان بودن زیر دست و پای ستمگران ظالم و گدمال می شود کودکان یتیم و آواره شده و زنان بی سرپناه و بیاور مورد تجاوز قرار میگیرند جوانان می خواه کشید شده و مادران چشم برای فرزندانشان روز و شب را با عشق سپری می کنند اهل بیداد از جفا ننگی ندارد جز مسلمان با کسی جنگی ندارد از مسلمان خون میریزد ولیکن خون مسلم در جهان رنگی ندارد خون مسلم در جهان رنگی ندارد کهی شود مسلم زی ظلم ظالمان گرداد روا کهی شود احکام قرآن در قضا گرداد روا مسلمین هر جای دنیا زیر پای ظالمان که شوند آزاد غم مسلمین بینوه که شوند آزاد از غم مسلمین بینوه که شوند مسلم ز ظلم ظالمان گرد رها که شود احکام قرآن در قضا گردد روا مسلمین هر جای دنیا زیر پای زانمان که آزاد از غم مسلمین بی که آزاد از غم مسلمین بینوا دین اشق و مهربانی دین اسلام است و بس دین اشق و مهربانی زوهمی گرداد چرا نال سر داد تفلی زیر بمباران و تیر تک تک شد رن جور او از این جفا تک تک شد تنیرند جور او از این جفا بر سر پیرو جوان ها وارگشت خانه ها بر زنان رحمی ندارند اهل بیداد و هوا پیگره این پاک از این ستم آزخمی هاست آز مره همی باید کیاوید ای مسلمانان شما مرحمی باید کیابی ای مسلمانان شما کی شود مسلم ز ظلم ظالمان گردد راه کی شود احکام قرآن در غزاه گردد روا مسلمین هم جای دنیا زیر پای ظالمان کیشان آزاد از این غم مسلمین بین نوا کیشان آزاد از این غم مسلمین بین نوا <تصفيق> مسلمین اندیشه باید از چرو در هر طرف زیر جور و ظلم گشته دین پاک مصطفا مسلمین با این صداه دل خراش تا که رسد ان افتخار صالحای ابتدا که رسد آن افتخار صالحای ابتدا که دنیا مادن یا ایمانی شود برز مهر و عشق و یک رنگ گی و هم صلح و صفا بر چی برچید گردد از زمین کاخستان جای انگر داد زی ایسا رو وفا کاخی بنا جای انگر داد زیسا ایسا رو وفا بنا که شود مسلم زی م زاری من گرداد راه که شود آقا قرآن در دزد گرداد روا مسلمین هر جای دنیا زیر پای زاری من آزاد از این غم مسلمین نبینوا که شون آزاد از غم مسلمین نغمه وحدت چو از به شما آید برون میرسد یاری شما را خدا چاره کار اتقاد است اتحاد است اتحاد زیر این پرچم شوید ای اهل ایمان یک صدا زیر این پرچم شوید ای اهل ایمان یک صدا امر قرآن راه اطاعت گر کنی ای دی آل دین بر شما هرگز نیاید رنج در دو ابتلا بر شما هرگز نایاند رنج در دو ابتلا که شواد مسلم ز ظلم زالمان گردد رهوا کیشوان احکام در قضا گرداد روا هم جای دنیا زیر پای ظالمان کیشوان آزار ذنغم مسلمین نبی نوا کیشوان آزار ذنغم مسلمین نبی نوا